در نهان خانه اشرت سنمی خوش دارم که سر زلف و روخش نهل در آتش دارم عاشق و رندم و میخاره به آواز بلند وین همه منصب از آن هور پریوش دارم گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری من به آغ سهرت زلف مشوش دارم چو چونین چهره گشاید خط زنگاری دوست من رخ زر به خونا و به منقش دارم گر به کاشانه‌ی رندان قدمی خواہی زد نقل شعر شکرین و می بی‌قش دارم ناوک قمزه بیار و رسن زول که من جنگ‌ها با دل مجروح بلا دارم حافظا چون غم و شادی جهان درگذرد بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم